خدای یگانه‌ی مهربان سلام افسانه ها هویت نامیرای هر ملت هن که از یک نسل به نسل دیگه میرسن خوندن و شنیدن افسانه از جمله نیازهای رویه آدمیه نیروی تخیل و تصور مردم و باورهای آمیانه افسانه هایی رو خلق میکنه و گویندگان و نویسندگان این افسانه ها رو در قالبی ساده، روان و سرگرم کننده ارائه میدن. و ما افسانه این هفته ما افسانی اسپانیایی به نام افسانه سه معما برگرفته از کتاب قصه ها و افسانه‌های اسپانیا به قلم میم سویه و با ترجمهی از حسن صرف‌قد اونی دارم بشنوید و لذت ببرید در روزگاران بسیار قدیم در سرزمین اسپانیا کشیش سانبلاس زندگی میکرد که وقتی توی دهکده راه میرفت شکمی بزرگ و گونه برجسته و غروری که داشت همه رو متحیر میکرد توی دهکده چنان به کشیش سانبلاس اعتقاد قلبی داشتند که اتا قاضی دهکده هم بدون مشورت با اون هیچ تصمیمی نمیگرفت خلاصه هر کلمه که از دهن کشیش سامبلاس بیرون میومد برای تمام اهالی دهکده حکم پیشگویی رو داشت روزی از روزها کشیش سامبلاس در برابر ظرف سوپ بزرگی که بخار اشتها انگیزی از اون بلند می نشسته بود که یه دفعه پسر بچه اومد تا به اون بگی که پادشاه به دهکده رسیده و غازی که خیلی دست بچه و قافل گیر شده از آقای کشیش تقاضا میکنه چه زودتر خودش رو به اون برسونه و در استقبال و پذیرایی از پادشاه مددکار اون باشه. کشیش سامبلاس با خونسردی تمام رو به پسرک گفت شاه میتونه منتظر بمونه. شخصیتی مثل من با این همه اجل و شتاب به خودش زحمت نمیده پسرچون پسرک لحظه ما تو مبهودی استادو و چون دیگه حرفی از کشیش نشنید از اونجا دور شد کشیش با خونسردی و اشتهاقی فراوان شروع به خوردن سوپ کرد آخرین قاشقش رو خورده بود که از کوچه سر و صدایی شنید چون آدم کنجکاوی بود از سر میز بلند شد در رو باز کرد و یه دفعه پادشاه رو در مقابل خودش دید کشیش یه لحظه سکوت کرد و خواست چیزی بگی که پادشاه پیش دستی کرد و گفت آقای کشیش شهرت شما باعث شد که بخوام شما رو ملاقات کنم و چون شما به دیدر من نیومدین من به سراغتون اومدم کشیش با دستاچگی گفت: الو حرت ال حرت جسارت بنده رو ببخشید راستش راستش وقتی خبر تشریف فرمایی شما رو دریافت کردم داشتم داشتم سوپ میخوردم. اگه بدونید من چقدر از سوپی که سرد شده باشه متنفرم. بنابراین میواید تا سوپ سرد نشده بود. اونو میخوردم حال. پادشاه؟ از این بیغیدی و سادلویی کشیش حیرت کرد و با خودش گفت کشیش خود پسند تمام کشیش برای خدمت به خداوند زندگی میکنند. اما این کشیش اول به خودش خدمت میکنه. باید درسی بش بدم تا هم مقداری لاغرش کنه و تا هم حدودی از غرور و خودخواهی کاذبش کم بشه داشتنه این همه گرور و بی و چاقی برای کشیش مناسب نیست خوب نیست بعد از چند دقیقه پادشاه وارد خونه یک کشیش شد و با اون به گفت پرداخت بادشاه بعد از کمی گفتگو با کشیش بلاس به اون گفت آقای کشیش عزیز می که شما یکی از دانشمندان بزرگ این سرزمین هستین به همین دلیل وسوسه شدم تا سه ای رو که بزرگترین متفکران کشور با اون مشکل روبرو شدن با شما میون بذارم کشیش سمبلس خنده کوتاه کرد و گفت <تصفيق> بپرسید قربان الا حضرت بپرسید من مطمئنم که مسئله شما هر باشه پاسخ گفتن به اونها برای من مثل بازی کودکانه است بپرسید قربان پادشا سری داد و گفت بسیار خوب بسیار خوب میل دارم به من بگید که ارزش من چقدر برای اینکه دور زمین رو بگردم چقدر باید وقت صرف کنم و اینکه الان به چی فکر میکنم و اشتباه هم از چه لحاظه سه تا معما و سؤال رو مطرح کردم چشمایی کشیش با شنیدن این پرسش رو گرد شد و با دستپاچگی گفت بفت اه اه اه اجازه اجازه بدین پادشاه کلام کشیش رو قطع کرد و گفت نه نه نه نه هیچ اجازه نمیدم شما گفتید پاسخ این مسئله ها برای شما مثل بازی کودکانه است. توقع دارم که جوابم رو فورم بدین آیه کشیش کشیش که خودش رو توی بد موقعیتی دید گفت قربان تقاضا دارم یه فرصت کوتاه به من بدین پادشا فکر کرده گفت باش من یک ماه به فرصت میدم امروز اول ماه مه ساعت چهار بعد ظهر روز اول جوان توی کاخم منتظر شما هستم آقای کشیش اگه بتونین به مسائل پاسخ درست بدین پاداش خوبی دریافت میکنین و تازه شما رو سرکشیش کلیسای جامع میکنم کشیش با درموندگی پرسید و... و... الو ازوت اگه نتونم گربانچی پادشاه گفت اون وقت اون وقت رو سوار فر بهترین علاق شهر میکنم. و در میون تمام کوچه و خیابون میگردونم. و سر هر چهار را دوازده ضربه شلاق می امیدوارم هوش بین نزیرتون شما رو از این ننگ و رسوایی مسون بداره کشیش پادشا این رو گفت و از کشیش خداحافظی کرد و رفت بعد از رفتن پادشاه کشیش با خشم گفت مرچیکه لا دیدین چجوری آدم برجسته ای مثل من رو به شلاق تهدید کرد من باید هر توری شده پاسخ های سه سال رو پیدا کنم و وقتی سرکشیش کلیسای جامع شدم اون وقت شورای مذهبی رو علیه پادشاه به شورش وادار میکنم بعد کشیش با صدای بلند فریاد زد دمینگا دمینگا زود باش تمام اون کتابهایی رو که سالها توی انبار خاک کردن بیار پایین دمینگا دمینگا خدمت کار وفادار کشیش هم فورا به انبار رفت و با زحمت زیاد تمام کتابهایی رو که اربابش خواسته بود پایین آورد کشیش با حس شروع به ورق زدن کتاب‌ها کرد اون شب شام کم خورد، دیر وقت به رخت خواب رفت و بیشتر از دوازده ساعت هم نخوابید خلاصه، هشت روز متوالی به همین شکل گذشت و کشیش رفت رفت لاغر میشد. روز نهم مه چیزی نیافته بود ولی وزنش از صد و ده کیلو به صد و پنج کیلو رسیده بود به این واسه موجب به حیرت و حتی نگرانی دومینگو خدمتکار وفادار کشیش هم شده بود بله کشیش افزانه ما ناراضی کمی نگران ولی مطمئن به هوش خودش میخواست هر طوری شده پاسخ سوالات پادشاه رو پیدا کنه بنابراین شروع کرد به قدم زدنهای طولانی چون معتقد بود که حرکت پاها جنبش فکری رو به دنبال داره اون راه های طولانی رو در پیش گرفت تونتر قدم برداشت به زحمت فرصت غذا خوردن پیدا میکرد و شبها که به خونه برمیگشت گشت اون خسته بود که تمام شب پاخاش درد میکرد نمیتونست چیزی بخوره و درست و حسابی بخوابه کم کم وزن کشیش افسانه ما به هشتاد کیلو رسید و تمام چربیه بدنش آب شد ولی هنوز نتونسته بود پاسخ سوالات پادشاه رو پیدا کنه. دومینگو خدمتکار کشیش از این وزن ناراحت بود. اما از اینکه اربابش که, که قبلا مغرور بود و یه دفعه به آدمی حراف و خودمونی تبدیل شده بود خیلی راضی بود. روزی کشیش سامبلس ورده هاشپسونه شد و از گلفت که سرگرم کندن بزغالی آویخته به غلاب بود پرسید دختر جان الان نرخ گوشت بزغاله چنده؟ گلفت به تندی جواب داد قربان هر نیم کیلو هشت پولیسیا کشیش سریع داد داده گفت گرونه گرونه گرونه گرونه ولی بگو ببینم اگه از تو بپرسن شاه چقدر میارزه چی میگی؟ کلفت که از این سوال اربابش تعجب کرده بود فکری کرده گفت آقای کشیش راستش این کالایی نیست که در دهکده رایج باشه اگه از من بپرسن من میگم که در این باره چیزی نمیدونم و بهتره برن و از اربابم کشیش دانشمند بپرسن چون شما همه چیز رو میدونین قربان کشیش غرغر کنان گفت تو دختر ابلایی هستی و بعد در رو محکم به هم زد و رفت کشیش این بار نزه غازی دهکده رفت و سوالات پادشاه رو از قاضی پرسید ولی قاضی نتونست کمکش کنه بعد کشیش رفت سراغ عطار محزردار داروغه خیات کفاش و حتی زینسازی که به غاترش میرسید رفت و سوال کرد اما در دهکده هیچ کس در مورد ارزش پادشاه مدت لازم برای گشتن دور زمین و اشتباه پادشاه چیزی نمیدونه است. کشیش بیچاری ما هر روز پشمرده تر میشد و چهرش رنگ باخته و وزنش به پنجاه کیلو رسیده بود. دمگا از فرط ناراحتی و نگرانی به گریه افتاده بود. دیگه چیزی به اتمام محلت پادشا نمونده بود. کشیش غرورش اجازه نمیداد به سراغ همکارانش یعنی که شیش های دیگه بره و از اونها پاسخ سوالات رو بپرسه ولی با خودش گفت این کار تحقیرام تر از این نیست که منو سوار بر اولاق توی دهگده بچرخونه. خدای من نه نه بهتره برم سراغ دوستام شاید راه حلی پیدا کنم بعد کشیش به دونگو دستور داد که قاطرش رو زین کنه و هاش رو برای یه سفر چهار یا پنج روزه پر کنه دومینگو اطاعت کرد و آماده شد که به دنبال اربابش بره ولی کشیش با خشونتون گفت نه برگرد من تنهایی میدم دومینگو با قاطعیت گفت امکان نداره ممکنه آقای کشیش را رو گم کنه موقع عبور از روتونها غرق بشه یا خدای نکرده ماری اونو نیشو زنه یا دوزده اونا گشیش سامبل داد زد و گفت ابله به جای اینکه منو به بلاهای سخت تهدید کنی بهتره بذاری برم من که بچه نیستم تا شعا ده فرسنگی ده همه برای من احترام قائلن. تازه ابله راها رو فقط علاقهای زبون نفهم گم میکنن نه نم دومینگو که هنوز لگام قاطر رو به دست گرفته بود گفت آقای کشیش اجازه بدین همراهتون بیام خواهش میکنم این این قاطر یه بدجنسی میکنه همین که ببینه من نیستم که هدایتش کنم به هر شوخی نابجایی دست میزنه کشیش چون نگاهی به دونگوی وفادار انداخت که بیچاره خاموش شد و لگام رو به دست اربابش داد و دیگه اصراری نکرد یک ساعت از رفتن کشیش نگذشته بود که کشیش افسانه ما راهش گم کرد رفت و رفت پرسید و پرسید تا بالاخره ظرف پنج روز از تمام همکاران که اونها رو هرگز لایق ندونسته بود دیدن کرد سعی کرد با همه مهربون باشه و با مهارت از همه سوال کرد و نزاشت دیگران از ظاهرش بفهمند که چه منظوری داره کشیش افسانه ما همچنان رفت و رفت و روزها به سرعت میگذشت و دیگه به پایان مهلت پادشاه چیز زیادی نمونده بود در این مدت کشیش خیلی کم خوابید خیلی کم غذا خورد و با آدمای زیادی ملاقات کرد حالا دیگه وزنش به چهل کیلو رسیده بود ولی هنوز پاسخ هیچ کدوم از سوالات پادشاه رو پیدا نکرده بود کشیش هرچه فکر کرد عقلش به جایی قد نداد که نداد اما نه هنوز یه نفر بود که شاید میتونست به کشیش ای ما کمک کنه این زنی با کنجکاوی تمام به اون گفت با دولورس کار داری؟ کشیش بتوندی جواب داد بله بله در باز کن زن گفت ولی دولورس به شهر سیویل رفته خب چیکارش داری؟ باید کار مهمی باشه نه؟ کشیش به, به زور تونست جلوی خشم خودش رو بگیره حوصلی کنجکاوی زن رو نداشت بنابراین بی از اونجا دور شد رفت و رفت تا به خونش رسید شامگاه سی و می بود و کشیش زیر لب با خودش می گفت فردا شلاخ می فردا شلاخ می پادشاه پادشاق لعنتی دومگو نوکر وفادار کشیش با دیدن اربابش به استقبالش اومد و با تأسف پرسید ارباب چه اتفاقی افتاده؟ چی به روز خودتون آوردین؟ و بعد با گریه اضافه کرد اگه میدونستم چه کمی بر قلب شما سنگینی میکنه خیالم راحت میشد خوربا شما چه مشکلی دارید؟ خواهش میکنم بگی چگه من بتونم اونو حل کنم و شما رو نجات بدم <تصفيق> کشیش با اصبانیت گفت <تصفيق> تو به من کمک کنی؟ تو نوکر ابلهی هستی چه جوری میخوایی منو نجات بدی ها؟ دونگو به تندی جواب داد ارباب من اونقدر هم که شما تصور میکنید ابله و احمق نیستم تازه میدونم که فردا قرار شما رو سوار بر الاغ دو شهر که شیش با عصبانیت فریاد زد سکت چه ابله دیوانه تو دیگه بیادم نیار که فردا قرار چه بر سرم بیاد وای. دومینگو پوست خندی زد و گفت آقای کشیش مگه من میذارم که فردا آب روی چندین ساله شما توی دهکته بره کشیش درونده و ناراحت گفت آه آه دومینگوی بیچاره آه. تو چه چجوری میخوایی جلوی سوار شدن من رو روی علاق و چرخوندنم توی دهکده رو بگیری ها این امر پادشاهه دونگو خنده‌ای کرد و گفت <تصفيق> ناراحت نباشید من فکر همه کردم بعد کشیش رو برد توی اتاق نشیمن تا نقشی خودش رو براش بازگو کنه اینگه نقشه خودش رو برای اربابش کشیش سامبلس بازگو کرد و گفت فرداسو برم مزره و گندم بکارم. شما لباسه منو ببوشید و به جای من برین البته بیشک شما بزرفشان خوبی نخواهیم بود ارباب جان چون هر کسی رو به کاری ساختد ولی خب به یاری خدا چیزی صبر میشه در این مدت منم با اجازه شما لباس شما رو میپوشم و پیش پادشاه میرم تا موقع بازگشت من شما بیرون بمونید تا کسی متوجه کلکمان ما نشه قربان من به شما خال میدم مقام سرکشیشی رو براتون بیارم دومینگو سوار بر قاطر و آراسته به بهترین لباس اربابش تنها به طرف قصر پادشاه به افتاد وقتی وارد قصد شد پادشاه با دیدن اون گفت خدای من <تصفيق> آقای کشیش چقدر لاغر شدین حتما جواب سوالاتم رو پیدا کردید ها؟ نمیگو که حالا دیگه به جای اربابش نقش بازی میکرد به پادشاه گفت اعلی حضرت شما بیست و نه درهم میارزید پادشاه با این حرف از روی تخت پادشاهی پایین پرید و با عصبانیت گفت گستاخ من بیست و نه درهم میارزم؟ دونگو جواب داد اله حضرت باید بیاد بیارید که حضرت عیسی مسیح رو هم به سی درهم فروختن فکر میکنم که اله حضرت نمیتونه ادعا کنه که بیش از عیسی مسیح میارزه پادشا آروم شد و گفت درسته ولی خب بگو ببینم چقدر وقت صرف گشتن به دور زمین میکنم دومینگو بلا جواب داد 24 ساعت علا حضرت البته اگه بخواییم سوار خورشید بشین پادشاه و درباریان دومینگو رو تحسین کردند، چون جواب رو مبتکرانی یافتن و از کمترین کمتنین اطلاعیم از نجوم نداشتن پادشاه خندی کنن گفت <تصفيق> آقای کشیش دارین به سرکشیشی نزدیک میشین حالا بگو ببینم که من چه فکر میکنم و از چه لحاظ در اشتباهم. هم دومنگو گفت علا حضرتو شما فکر میکنین که من کشیش سنبلس هستم پادشاه با تعجب گفت این چه سوالیه؟ خب معلومه که شما کشیش سنبلس هستیم دومینگو خنده ای و گفت علا حضرت ها جسارتن باید به عرضتون برسونم که من نوکر کشیش سانبلز هستم دومینگو در همین لحظه سر سرصدایی توی تالار طالار افتاد. غازی دهکده نفس نفسدنان وارد شده گفت قربان علا حضرت ها توی دهکده اتفاق عجیبی افتاده پادشاه با نگرانی پرسید چه اتفاقی؟ قاضی گفت آربان امروز صبح کشیش رو دیدن که سوار بر قاطر راه سویل رو در پیش گرفته در همون زمان اونو توی مزرعه دیدن که بزرفشانی میکرده هنوز همون جاست اون،, اون لباس نوکرش رو پوشیده ولی رو شناختن باید جادویی در کار باشه علا حضرتا جادو شاه خندید و به قاضی گفت <تصفيق> این مرد رو میشناسی؟ قاضی نگاهی به دومینگو انداخت و گفت پناه بر خدا این ای این تومگونو که کشیش 16 ولی ولی چرا لباس اونو پوشیده؟ پادشاه گفت دومینگو چرا منو فريد دادی؟ چرا بجای اربابت اومدی؟ ها؟ دومینگو گفت ابدن الا حضرت ابدن من فقط برای حفظ آبروی اربابم این کارو کردم و از اون استدعا کردم به جای من به مزرعه بره و بظرفشونی کنه اربابم طاقت شلاق خوردن رو نداره الا حضرت من من حاضرم به جای اون شلاق بخورم پادشاه که وفاداری دومینگو نسبت به اربابش به دلش نشسته بود سری تکون داد گفت من اربابت رو فقط به خاطر تو میبخشم ولی اون سرکشیشی شیشی رو از دست داد بیا بیا این ده هزار پول سیار رو بگیر که واقعا حقته دومینگو با خوشحالی ده هزار پول سیار رو گرفت و از قصر پادشاه در حال خارج شدن بود که صدای پادشاه بلند شد آهای دومینگو بروابت بگو که بهتر از اونه که من فکرش رو میکردم چون خدمتکار با وفایی مثل تو داره افثانه اسپانیایی سه معمار رو شنیدید برگرفته از کتاب قصه‌ها و افسانه‌های اسپانیا به قلم میم سویه و با ترجمه ای از حسن سرغت افسانه‌ها ها گرچه ممکنه در پیچ و خمهای زمان در کورراهای تاریخ اقوام و ملل کمرنگ بشن اما چراغ افسانه‌ها ها هیچ وقت رو به خاموشی نمیره گوهر و گنجینه افسانه همچنان سینه به سینه و نسل به نسل در سر و سر جهان انتقال پیدا میکنه تا به واپسین بازمانده ها و وارثان فرهنگ و تمدن بشری برسه هزار افزان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح ویراستار سید فری برز نور بخش. اجرا مهران دوستی صداوردار محفام پرتو. حیی زهرا عبدالله زاده تا افثانه دیگر بدرود